هزار افسان برنامه از گروه جوان و فرهنگ نام خدایی که مهرا فرید سلام و درود بر شما همراهان شبانه افسانه‌ها زندگی مردم مایه گرفتند ریشه در فرهنگ و عقاید مردمان هر سرزمین دارند و باستابی از رنج‌ها، شادی‌ها، آرزوها و آرمان‌های مردم میان که خود سازنده‌ای اصلی این افسانه‌ها هستند در برمی هزار افسان افسانی رو می کنیم به نام افسانه گنجشک و ملخ بر از کتاب افسانه های عرب به قلم حسنا فریز و عبدالله حتایب با ترجمه از محمد شمس امیدواریم که از شنیدن افسانه گنجشک و ملخ لذت ببرید در روزگاران قدیم در شهر دمشق مرد تنبلی به نام گنجشک و همراه همسرش ملخ زندگی میکرد اونا زندگی بدی نداشتن اما زن از دست تنبلی شوهرش به سطوح اومده بود و مدام میگفت مرد اینقدر تنبل نباش خوب نیست که مرد کار نکنه اما این حرفا فایدهی نداشت و مرد افثانی ما یعنی گنجشخان دست از تمبلی بر نمی و هر روز تنبل و تنبلتر تر تا اینکه یه روز سلطان دمشق برای شستن صورتش کنار حوز شاهی نشست اتفاقا از غذا گنجشخان هم از اون نزدیکی ها در حال گذر بود اون لحظه ایستاد و سلطان رو تماشا کرد سلطان انگشترش رو درآورد. و کنار حوض گذاشته بود و داشت سر و صورتش رو میشست. در این موقع یه مرغابی که سری خال خالی داشت از راه رسید و دور از چشم سلطان انگشتر اون رو بلعید و آروم از اونجا دور شد سلطان بعد از اینکه سر و صورتش رو شست به سراغ انگشترش رفت وقتی اثری از اون ندید با عصبانیت فریاد زد انگشترم انگشترم درها رو ببندید هیچ کس باید از قصر خارج بشه. فوراً همه رو بدردید. گنجشخان خان ما از ترس اینکه مبادا نگهبانهای قصر به سراغش بیان فورا از اونجا دور شد و به طرف خونش حرکت کرد. گنجشخان وقتی به خونش رسید هر اونجره که دیده بود برای زنش ملخ خانون تعریف کرد. زن با شنیدن این ماجرا با خوشحالی گفت چی از این بهتر زود باش زود باش به برو و بگو که من قیب گم و میتونم هر چیزی رو که گم شده پیدا کنم مطمئن باش سلطان پادهاش خوبی به تو میده میبینی؟ میبینی شانس به ما رو کرده گنجش خان با تحجب گفت چه شانسی زن؟ من حوصله این بازی ها رو ندارم برامون درد سر میشه زن گفت چه درد سری تو کاری نباشه فقط هرچی میگم بگو چشم مطمئن باشه هیچ مشکلی پیش نمیاد و ما ثوتمند میشیم به همین راحتی حالا حالا برو برو بازار رو یه دست لباس عجیب و غریب یه عصای مخصوص و یه مش مهره و گوشماهی بخر بیار تا بگم چی کار کنی گنجش افسانی ما به ناچار به بازار رفت و اونجوری که زنش ملخ خانوم گفته بود تهیه کرد و به خونه برگشت گنجش خان لباس عجیب و غریبش رو پوشید اصای مخصوص رو به دست گرفت و مهرب و گوش ماهی رو توی سینی کوچیکی ریخت و به طرف قصد راه افتاد گنجش خان نزدیک قصد که رسید با صدای بلند گفت گنجش که از آینده خبر میدم چیزای گم شده رو پیدا میکنم. کنم گنجش که خبر به گوش سلطان رسید سلطان دستور داد که اون رو به قصد بیارن نگه بنای غصر گنجشخان رو به غصر آوردن سلطان یه نگاهی به لباسه عجیب و غریب و اون انداخت و گفت اگه اگه انگشتر منو پیدا کنی هزار دینار طلا به تو میدم و تو رو قیبگوه مخصوصت دربار خود می گنجشخان گنجش کرد و گفت بله غربان به یاری خدا و قدرت عجیبی که دارم انگشتر قبله عالم را پیدا می کنم فقط فقط دستور بفرمایید تمام موجودات زنده قصر از مقابل دیدگان من بگذرم در عرض چند دقیقه به دستور سلطان غلامان و کنیزان حاضر شده و از مقابل دیدگان گنجشخان گذشتن گنجشخان دایره‌ای روی زمین کشید و چیزایی زیر لب زمزمه کرد که برای همه نامفهوم بود. بعد از غلامان و کنیزان نوبت به درباریان رسید و بعد از آنها نوبت به امیران و وزیران همه یک به یک از مقابل دیدگان گنجشخان گذشتند. گنجشخان باز هم سرش رو تکون داد و به سلطان گفت: "آه ایونات، دستور بفرمایید." تمام عصبها، گاوها و گوسفند و هر موجود زندگی دیگه ای که توی قصره از مقابل دیدگان من بگذرن. به دستور سلطان عصبهای زیبای عربی گاوها، گوسفندها، غازها و مرغابیها از مقابل دیدگان گنجشخان گذشتن. نوبت به مرغابی سرخالخالی که رسید گنجشخان عصای خودش رو تکون داد و گفت. خودشه این مرغابی دزد انگشتر جناب سلطانه به دستور سلطان جلاد غصر اومد و فورا مرغابی رو کشت و انگشتری رو پیدا کردن سلطان از پیدا کردن انگشترش خیلی خوشحال شد و هزار دینار طلا به گنجش خان داد و اونو به اسم غیبگوی مخصوص دربارش به همه معرفی کرد به شهرت و گنجش گنجشخان افسانی ما در تمام شهر پیچید سلطان بهش توجه خاصی داشت اما ادهی از درباریان از این موضوع ناراحت بودند و حتی به گنجشخان حسادت هم میکردند. اونا گاهی در لفافه به سلطان می که پیدا کردن انگشتری فقط یه تصادف بوده و گنجشخان اتفاقی دو انگوشتر رو پیدا کرد کم کم این حرفا روی سلطان تأثیر گذاشت و تصمیم گرفت یه روزی گنجش خان رو امتحان کنه و به همه ثابت کنه که اونطوری که اونا میگن نیست و گنجش خان در قیبوی مهارت داره بالاخره روزی از روزها سلطان و درباریان در تالار پذیرایی نشسته بودن گنجش و ملخی از پنجره وارد تالار شدن گنجش ملخ رو دنبال میکرد یکی از درباریان که این صحنه رو دید، فکری به خاطرش رسید و فوراً به سلطان گفت قربان، فرصت خوبیه که گنجشخانه خانقه رو امتحان کنیم. سلطان سریع تکون داده گفت جوری؟ درباری گفت قربان، ما این ملخ و گنجش رو میگیریم، توی یه ظرف میزاریم، اون وقت شما از گنجش خانه قیبگوی بپرسیم که توی صرف چیه اگه درست جواب داد خب ما هم به اون ایمان میاریم و باورمون میشه که اون قیبگویی ماهره و اگه نتونست جواب درست بده معلوم میشه که دروغگو و کلاه برداره و قبله حالم اونو به سزای اعمالش میرسونه سلطان این پیشنهاد رو پذیرفت دستور داد ملخ و گنجشت رو بگیرن و توی ظرفی بذارن و بعد گنجشخان افسانی ما رو صدا زدن در عرض چند دقیقه گنجشخان در محضر سلطان حاضر شد سلطان ظرف رو جلوی اون گذاشته گفت خیلی ها میگن که تو قیقو نیستی و کلاهبرداری و پیدا کردن انگشتر منم اتفاقی بوده حالا اگه واقعا غبگویی؟ بیا جلوتر. بگو ببینم داخل این زرد چیه ها؟ رنگ از روی گنجش خون پرید نمیدونست چیکار کنه؟ یه دفعه یاد زنش مل خانم افتاد. تمام این ها تقصیر اون بوده. اگه اون نبود گنجشخان بیچاره اینطور گرفتار سلطان نمیشد گنجشخان آهی کشید و گفت اه ای ملخ ای ملخ اگر تو نبودی گنجش که بیچاره هیچ وقت گرفتار نمیشد با شنیدن این حرف سلطان و درباریان از تعجب دهنشون باز موند سلطان بی اختیار فریاد زد عجب عجب! بعد سرپوش نقره ای رو برداشت توی زرفی گنجش بود و یه ملخ بله این بار هم گنجش خان ما شانسا بود و شهرتش بیشتر و بیشتر شد روزها و هفته ها و ماه ها گذشت تا اینکه یک روز به خزانه سلطان دست پر زده شد سلطان گنجشخان و فراخوند و گفت باید هر زودتر دوست های خزانه رو پیدا کنی وگرنه سرت رو از تن جدا می‌کنم فهمیدی گنجشخان که میدونست نمیتونه دستور سلطان سرپیچی کنه گفت امر امر مبارکه فقط قربان چهل روز به من مهلت بدین پیدا کردن دوستهای خزانه به زمان نیاز داره فقط چهل روز به من مهلت بدین قربان سلطان قبول که گنجش خان با غم و اندوه و نگرانی به طرف خونش براه افتاد و با خودش فکر میکرد که این دفعه دیگه نمیتونه از چنگال سلطان نجات پیدا کنه وقتی به خونش رسید زنش رو صدا زد گفت زن زن میبینی؟ میبینی چه بلایی سرمو هرچه میکشم از دست تو میکشم. زن با نگرانی پرسید مگه چی شده من؟ جنن انقدر پریشونی گنجش خان با ناراحتی گفت دیگه میخوای چی بشه؟ کارم تمومه کارم oh <spirituality> <tusa Mixed> تمومه <Elena> تا چهل روز دیگه سرستانم جدا میشه. بعد تمام ماجرا رو برای زنش تعریف کرد و از اون خواست به بازار بره و چهل جوجه بخره تا این روزای آخر اون رو خوش باشن. ملخ خانم هم به بازار رفت و چهل جوجه خرید. شب اول کنار اجاق نشستن و یکی از جوجه ها رو سور کردن و خوردن. تا اینجا افسانه ما رو شنیدی. بریم سراغ دوست های خزانه پادشاه بعد دوست ها چهل نفر بودن و در غاری نزدیک شهر زندگی میکردن اونها وقتی فهمیدن که سلطان کار رو به گنجشخان سپرده ترسیدن و حسابی به فکر فرو رفتن بالاخره رئیس دوست ها گفت ام. یکی از شما باید به خونه ی گنجش که و سر گوش آب بده. یکی از دوست هم فوراً خودش رو به خونه ی گنجش خان و پشت در گوشی ایستاد گنجشخان خان به زنش گفت خوه اینم یکی از اون چلتا. دوست تا این رو شنید اونقدر ترسید که دست و پاش به لرزه در با عجله خودش رو به قاه رسوند و فریاد زند اون ما شناخته اون ما رو شناخته واقعا قیبگوگ ماهریه اون ما شناخته و بعد تمام ماجرا رو برای همه دزدها تعریف کرد رئیس دوستا فکر کرد و گفت شاید شاید شاید تو حرفای اون قیبگو رو درست نشنیدی؟ بهتر فردا یکی دیگه از شما به خونه ی بره تا کاملا مطمئن بشیم شب بعد یکی دیگه از دوست به خونه ی گنجشخان رفت و فالگوشی استاد گنجشخان و زنش که تازه غذاشون رو تموم کرده بودن به هم گفتن اینم از دومی به این ترتیب دوست یکی یکی به خونه ی گنجشخان رفتن همه ی اونا هم فکر کردن گنجش خان اونا شناخته و حسابی ترسیده بودن شبه چهلوم که شد رئیس دوستها خودش به خونه گنجشکان رفت و به گوشی استاد گنجشخان به بزرگترین و جوجه ای که زنش براش پخته بود اشاره ای کرد و گفت خب اینم آخرین و بزرگترین اونا رئیس دوستها تا این حرفو شدید رنگ از روش برید با عجله خودش رو به دوستاش رسوند و گفت درسته درسته اون ما رو شناخته حتی میدونی که من رئیس شماام چاره نیست باید هرچی رو از خزانه سلطان برداشیم به این بر برگردنیم شاید اینطوری از سر تقذیر ما بگذره و ما رو نجات بده دزدهٔ دیگهم که حسابی ترسیده بودن قبول کردن که اونچه رو که از خزانه سلطان دزدیده بودن به گنجشخان بدن حلاسه. اونا رفتن سراغ گنجشخان و انوال دزدید شده رو به اون دادن و از اون تقاضا کردند که اونا رو ببخشه و چیزی در این باره به سلطان نگه گنجشخان هم پذیرفت و پول و جواهرات رو برداشت و به طرف قصر سلطان برافتاد سلطان با دیدن انوال به سرقت رفتش از خوشحالی فریاد کشید و پاداش زیادی به گنجش خان داد حالا حالا دیگه تمام مردم شهر دمشق از گنجش خامق گیبو حرف نمی زنن. از این ماجرا گوزه روزی گنجش خان و ناراحت به خونه برگشت رو زنش گفت من دیگه خسته شدم راستش از آخر و عاقبت این کار میترسم باید باید هر طوری شده یه کاری کنم که سلطان منو از این کار برکنار کنه هر جیف میکنم کارم. نمیدونم باید چی کار کنم ملخ خانم که پریشونی و نگرانی شوهرش رو دید فکری کرده گفت بهترین راه اینه که تو خودتو به دیوونگی بزنی اینطوری سلطان حتما تو را از این کار برکنار میکنه و تو راحت میشی گنجشخان با خوشحالی گفت فکر خیلی خوبیه باید خودمو به دیوونگی بزنم و فردای اون روز صبح زود مردم دمشق با کمال تحجدین گنجش گنجشخان قیبگوی مخصوص دربار سلطان با لباس خواب و پای برهنه تو کوچه میدو و به طرف قصر میره. ره هر کاری کردن نتونستن جلوی اونو بگیرن گنجشخان خان ناس اونا رو کنار زد و در یک چشم رم زدن خودش رو به اتاق سلطان رسوند سلطان در خواب ناز بود گنجشخان پاهای سلطان رو گرفت و اونا از رخت خواب پایین کشید یه دفعه دیوار اتاق خراب شد و روی تخت سلطان ریخت و تخت از وسط دوتا شد مردم دمشق از کوچیک و بزرگ فکر کردند که قیبگوی بزرگ شهر برای نجات جان سلطان چون این دیوانوار تو کوچهان می دویده و سلطان از روی حقشناسی گنجه خان رو در آغوش کشید و با صدای بلند گفت آه تو قیب گوگ وفادار منی هر آرزوی داری بگو برآورده کنم جان منو نجات دادی هرچی بگی انجام میدم قول میدم و گنجش اشخان که همین رو میخواست فوری گفت گربان اجازه بدین از این کار دست بکشم میخوام بقیه یک عمرم رو استراحت کنم سلطان از گفته خودش پشیمان شد ولی چون قول داده بود به ناچار قبول کرد و گنجش خان افسانی ما رو با هدایه بسیار به خونش فرستاد بعد به این ترتیب گنجش خان و ملخ خانم سالهای سال به خوبی و خوشی در کنار هم زندگی کرد افثانه زیبای گنجش و ملخ را از مردمان سرزمین دمش براتون نقل کردم بر گرفت از کتاب افسانه‌های عرب به قلم حسنا فریز و عبدالله تائب با ترجمه از محمد شمس افثانه ها بیانگر غم ها و ها و مبارزات همیشگی انسان هاست و اینه راز مندگاری و دیر افسانه‌ها. امیدواریم همه افسانه‌ها به ویژه های زیبای ایران زمین دیر بپایند و همواره ماندگار رو جاودانه بمانند هزار افسان کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت سالح ویراستار الهام اشر اجرا مهران دوستی صدابردار منیره قرغانی تهیه کننده زهرا عبداله زاده و افسانه دیگر به